به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده فاتیما افشار این داستان حاتم حاتم مردی ثروتمند و انسان دوست بود. به خاطر اخلاق خوب و خداپسندانش در بین مردم شهر دوستانی پیدا کرده بود و در تمام شهرها و کشورها مشهور شده بود با اینکه حاتم پیر و خسته بود ولی همچنان به کارهای خیر و خداپسندانه خودش ادامه میداد هر روز بعد از دعا و نیایش به درگاه خدا به حل گرفتاری های مردم می پرداخت تا اینکه نزدیکان و اطرافیان سلطان به دربار سلطان اومدن و از حاتم به بدگویی یاد میکردن و اون رو دشمن سلطان می‌خوندند. اونها تمام کارهای حاتم رو به منظور مقابله و برتری طلبیش با سلطان بیان می‌کردند که همکنون نام حاتم در میان مردم شهر و کشور پرابازه شده و نام سلطان کم اهمیت و بیعتبار شده و تحکید میکردند که شاید روزی حاتم به خاطر معروفیتش سلطان رو از تخت شاهی پایین کشیده و خودش به جای او به تخت بنشیند. با این سخن چینی ها و بدگویی ها سلطان به تدریج از حاتم رو برگردند و نسبت به او بدبین شد تا جایی که دستور داد او را دستگیر کنند و به زندان بندازند. با شنیدن این خبر دوستان و یاران حاتم به نزد هاتم آمدن و گفتند ای حاتم تو ناراحت و غمگین نباش ما با سلطان میجنگیم و اجازه نمیدیم که کوچکترین ای به تو برسونه اما حاتم که مردی مدبر و نیکو کار بود گفت نه این کار درستی نیست بهتر است که من از اینجا برم و خودم رو در گوشه‌ای دور از چشم سلطان و ماموراش مخفی کنم بلاخره طولی نمیکشه که سلطان به حقیقت پی ببره و از نیت خیر و خدا من آگاه بشه. اون وقت دوباره به بین مردم برمیگردم و با اونها خدمت میکنم. خیلی زود هاتم که اسیر خشم سلطان شده بود از اون شهر به شهر دیگه ای رفت و در مکانی که کسی از اون خبر نداشت پنهان شد. وقتی که سلطان از فرار و پنهان شدن حاتم مطلع شد، به جارچیاش دستور داد تا در هر کوی و برزن و هر شهر و دیاری جار بزنند که هر کس مخبیگاه حاتم را پیدا کنه، پانصد سکه طلا به او جایزه خواهد داد. معموران و جارچیان سلطان خبر جایزه دستگیری حاتم رو بر دیوارها و کوچه ها و شهرها نوشتن و جار زدند اما هیچکس موفق به پیدا کردن مخفیگاه حاتم نشد. ابراهیم مرد فقیر و زحمتکشی بود که به همراه همسر و بچه‌هاش در کلبه کوچیکی در جنگل زندگی می‌کردند. ابراهیم به سختی کار می‌کرد و از مزد کمی که به دست می‌آورد فقط میتونست غذای کمی برای زن و بچه هاش به دست بیاره. با این وجود همیشه شکر خدا رو به جا می آورد و به امید یه زندگی بهتر تلاش و کوشش میکرد. یه روز وقتی که اون دوتا در نزدیک تپهی به کار مشغول بودن، همسر ابراهیم ناراحتی از وضع زندگیشون شروع به حرف زدن کرد. این چه زندگی بد و است که ما به آن مبتلا شدیم. نگاه کن کلبه کوچک و تمام لباسهای من کهنه و وصله دار. زمینی که روش کار میکنیم پر از سنگ و خاشاکه. دیگه چیزی توی اون روش نمیکنه. من واقعا زن بدبخت و بیچارهی هستم. بچه های ما دیگه غذایی برای خوردن ندارن. ما فقیریم اگه اگه پول زیادی داشتیم میتونستیم مزرعه بخریم، کلبه رو بزرگتر کنیم و محصول بهتری بکاریم. میتونستیم زندگی بهتری داشته باشیم. اگه میتونستیم هاتم رو دستگیر کنیم و تحویل سلطان بدیم، با 500 سکه طلای اون فاز زندگیمون خوب میشد و خوشبخت میشدیم. میتونستیم زمین بخریم. وقتی که ابراهیم حرفای همسرش رو شنید با ناراحتی و عصبانیت گفت بحث کن دیگر از این حرفا نزن حاتم مرد خوب و نیکوکاریه چطوری میتونی در رابطه با او اینطوری حرف بزنی حاتم که در قاری در همون تپه مخفی شده بود با شنیدن سخنان همسر ابراهیم با خودش گفت اوه خدای من آنها واقعا فقیر و بیچیزند زند و پانصد سکه طلایی که برای من جایزه گذاشتن میتونه اونها رو خوشبخت و سعادتمند کنه و به آرزوهاشون برسونه من دیگه پیر شدم و امید و آرزویی به جز خدمت به بنده های خدا ندارم به زودی با زندگی خداحافظی میکنم پس چه بهتر که تو این روزای آخر زندگیم خودم و به این زن و مرد معرفی کنم تا پولی که اونها از بابت دستگیری من به دست میارن بقیه زندگی خودشون رو به خوبی و خوشی بگذرونند. پس از اینکه هاتم به اون دو نگاه کرد، از غار خارج شد و به نزد اونها رفت. رو به ابراهیم کرد و گفت: من حاتم هستم. مرا نزد سلطان ببر و مجدگانی خودت را دریافت کن. بعد از اون میتونید در کمال آرامش و خوشی به زندگی خودتون ادامه بدین. ابراهیم در حالی که از دیدن حاتم تعجب کرده بود گفت: نه نه چنین کاری نخواهم کرد. اگر من تو رو تحویل سلطان بدم، اون تو رو حتما میکشه. تو آدم خوب و مهربونی هستی و اسم و کارهای تو در سراسر این دیار بلند آوازه شده. من چگونه میتونم تو رو به دست سلطان بدم؟ چطوری میتونم با این پول زندگی کنم؟ من همچین پولی رو نمیخوام. من همیشه از خدای خودم طلب روزی میکنم. در هنگامی که اون سه نفر مشغول گفتگو با هم بودن ناگهان سه مرد از تپه بالا آمدن و به آنها ملحق شدند. یکی از اون مردها، عبدال نام داشت بلافاصله گفت من اون پیرمرد رو میشناسم اون حاتمه. من اون رو به سلطان تحویل میدم و مجدگانی خودم رو میگیرم مرد دیگر که رحمت نام داشت با عصبانیت به اونها گفت نه اول من اونو دیدم پس حاتم به من میرسه مرد سوم که اسمش قاسم بود گفت شماها که نمیدونستین اون اسمش هاتمه اما من اون رو دورا دور و بهتر از شما میشناسم چیزی نگفته بودم چون فکر میکردم شما اونو نمیشناسید. 500 سکه طلا به من میرسه آن سه نفر هاتم رو گرفتن و نزد سلطان بردند ابراهیم و همسرش هم به دنبال اونها راه افتادند اونها در فکر نجات هاتم بودند اما نمی که چه کار کنن و چطوری اونو کمک کنن. وقتی که اونها در برابر سلطان ایستادند، سلطان به اونها خطاب کرد. خب کدام یک از شما حاتم رو پیدا کردید؟ عبدال گفت، ای سلطان من اون رو پیدا کردم. رحمت گفت، نه دروغ می گوید ای سلطان من، اول من او را شناختم و به دنبالش رفتم. قاسم گفت: هر دو دروغ میگویند. من روزها در هر شهر و دیار به تعقیب او بودم و در حقیقت من اولین کسی می باشم که اون رو پیدا کردم. ابراهیم ای ناراحت و غمگین حاتم رو نگاه می‌کرد و با خودش درباره اینکه چطوری به حاتم کمک کنه فکر می‌کرد. سلطان رو به حاتم کرد و گفت: کدام یک از این سه نفر مستحق دریافت 500 سکه طلا هستند؟ حاتم گفت: هیچ کدام. هر سه آنها دروغ میگویند. اول بار این مرد فقیر مرو پیدا کرد و جایزه به او تعلق میگیرد. سلطان رو به ابراهیم کرد و گفت: جلوتر بیا، نام تو چیست؟ ابراهیم تعظیم کرد و گفت نامم ابراهیم ای سلطان سلطان پرسید آیا اول بار تو حاتم را پیدا کردی؟ ابراهیم در حالی که به حاتم و سلطان نگاه می جواب داد نه من حاتم را پیدا نکردم سلطان در حالی که به حاتم و آن چهار نفر نگاه می کرد متعجب پرسید پس چه کسی حاتم را پیدا کرده؟ ابراهیم جواب داد ای سلطان سرت سلامت باد وقتی من و همسرم مشغول کار و صحبت بر بالای تپه بودیم حاتم سخنان همسر مرا شنید و وقتی متوجه فقر و بدبختی و نارضایتی همسر من شد خودشو به ما معرفی کرد تا در مقابل تحویلش به شما پانصد سکه طلا نصیب ما بشه تا ما بتونیم با این مجدگونی زندگی خوب و راحتی داشته باشیم و از فقر و فلاکت نجات پیدا کنیم او گفت مرا تحویل سلطان بده و 500 سکه طلا را دریافت کن اما من به او گفتم که هرگز با مرد نیکوکار و خیرخواهی چنین کاری نمی کنم با شنیدن این سخنان سلطان رو به حاتم کرد و گفت آیا واقعا تو حاضری که در برابر زندگیت این مرد و زن مجدگانی دریافت کنند و به زندگی راحتی ادامه بدن؟ حاتم جواب داد من پیرمردی هستم و دیگر به پایان زندگانیم چیزی نمانده. آنها هنوز جوان هستند و امیدها و آرزوهای زیادی در سر دارند. پس چه بهتر که با دریافت مجدگانی سالهای زندگی خودشون رو به خوبی و خوشی بگذرونند. وقتی که سلطان حرفهای حاتم رو صادقانه و عین واقعیت دید، متوجه خطای خودش شد. با لبخندی روی لبش به حاتم گفت: بیا و در کنار من بنشین. تو میتونی راهنما و مشاور خوبی برای من در امر حکومت باشی. خیرخواه و انسان دوست هستی و مشخصه که مشورت با تو سخت این کارها رو برای من راحت میکنه. و آنچه که مردم درباره اخلاق و صفات پسندیده تو میگن همش درست و صحیحه و من اشتباه در مورد تو فکر کرده بودم. سلطان، خادمان خودشو فرا می خونه و میگه. عبدال را 186 ضربه و رحمت را 100 ضربه و قاسم را 66 ضربه شلاق بزنید که دیگه نسبت دروغ به هم ندن و در حضور سلطان یا هر کس دیگه راستگو باشند و بعد رو به ابراهیم کرد و گفت تو مرد راستگو و رحیمی هستی از حال و روزت پیداست که در رنج و زحمت زندگی می کنی بیا این 500 سکه طلا رو بگیر و به زندگیت سر و سامان بده که نیت و عمل خیر همیشه و همه جا موجب عزت و بزرگی مردمان میشه